Bye. من حرفم سیککو مریزن دوروورام همشون فیک و کففا داشتمهتی بگووب بازاس پیک و بریزن بریزن بریزن بریزن برام بعدش سه سوت ببیچم برام بگیرم سکم لام تا کام حرف نزنم خ دارن بعد میکنن نگاهبیوییچ می صدا شرط و شر سرتا صد سر زی رو بام و شرق و غرب در به در کل خرب و مشکلات دست و پنج نر میکنم داخلتو میارم اگه دست بزنی به داخل من داخل من نداره دداخلی به تو گلف سرما ما پای کنیم تو برو شررق سوال کنی راجبم توی سه تشن میبینی که میگن عاجیت مخرده, مخرده. مخرده. مخرده. مخرده. مخرده. مخرده. مخرده. یه جوری لاورساش گنده میاد تنگا گوی بود ساقی بهش گل نمیداد دادا رفت کردم مخت میخواد تخ نمیخواد پر بفم چی کست میگی پشت میگ باش تو صفه چست بنده گیتار تو فاز بگی بادیس و ارعر که بازی داد و در رفت واسه همسال ما سیپاب مقدس یکی پی اونا که تاریخ ساز شدن رفت یکی پی اون که شو چاخین کرد مگه هرکی رب دوست داشت باست رب کنه نه همینه گنده تو خالی تو رب بره بد همینه نمیرسیم به چند دور قبل همینه نمیرن پی مفهوم رپ ردش میکنم بی جنگ و رو روبه اونا که حرفا بی تو زدن ماه ها مخاطب میخوای مردم من پس تو که دستت قلم و میکشیش با هر لفظ رو ورق بدون هدف اصل و هدف نباشه همش لکه لک رو سفست پس تو که دستت تتقلم و میکشیش با هر لفظ رو بدون هدف اصل و هدف نباشه همش لک که رو صفست